کتاب افسانه های غول ها. نویسنده محمد شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانهی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده هانیه شکارچی و غول روزگاری مرد جوونی بود که دوست داشت شکارچی بشه روزی مرد جوون که جان نام داشت به پدرش گفت اینجا کسی نیست که بتونه شکار کردن و به من یاد بده و من مجبورم به سفر برم تا بلکه کسی رو برای این کار پیدا کنم او قول داد هرگز پدر و مادرش رو از یاد نبره و اگه اقبال برو کرد پیش پدر و مادرش برگرده و با اونا زندگی کنه بعد به راه افتاد به همه جا سر زد و همه جا رو گشت تا سرانجام به شکارچی پیری رسید شکارچی پیر به او گفت: «من هرچه رو که بلدم به تو یاد میدم به شرط آنکه تو هم تلاش خودتو بکنی و تنبلی نکنی. جان قول داد که به حرفهای استادش گوش کنه. به این ترتیب آموزش سخت و طولانی شروع شد. جان سه سال نزد شکارچی موند و چیزای زیادی درباره شکار جانوران وحشی آموخت. موقع رفتن که شد، شکارچی پیر تفنگ به جان داد و گفت این یه تفنگ معمولی نیست چون هرگز تیرش خطا نمیره جان تشکر کرد و راه افتاد رفت و رفت تا به جنگل بزرگی رسید درختان انبوه و بلند جنگل و تاریک کرده بود جان مطمئن بود که میتونه راهش رو تو جنگل پیدا کنه اما او اشتباه میکرد چون شب از راه رسید و او هنوز در جنگل سرگردان بود چاره ای نبود باید شب و تو جنگل به سر می برد به همین دلیل از ترس جانوران درنده در و وحشی بالای درختی رفت و اونجا موند مدتی نگذشته بود که ناگهان چشمش به شعله های آتیشی افتاد که در دوردست ها می سخت. در کنار آتیش سه غول گاوی رو کباب می کردن. جان با خودش فکر کرد باید هر طوری شده از این جنگل بیرون برم، اما فکر نمی کنم این سغول به من کمکی کنند. مگر اون که به اونا نشون بدم چقدر قویم. در حالی که پایین میومد ادامه داد، این هدی پیرمرد پیرمردو هم امتحان میکنم. اون وقت همونطور که پیرمرد بویاد داده بود، سینخیز به طرف ها رفت و پشت درختی پنهان شد و منتظر موند. ناگهان یکی از گول ها زد و گفت خیلی گرسنم حالا تکی ای از این گوشت رو میکنم و میخورم و بلند شد و تکی از گاو سرخ کرده رو کند اما تا اونو به دهنش نزدیک کرد جان گولوله شلی کرد و گوشت از دست غول به زمین افتاد غول نره از خشم کشید بعد خندید و گفت باد از اون چه که فکر میکردم قوی تره. بعد از بلایی که سر اولین تکی گوشت اومده بود، دومین تکی گوشت هم به هوا پرید. یکی از قولا با تعجب گفت، این باد نیست کودن، تیرانداز ماهری که به طرف ما شلیک میکنه. سومین غول زمزمه کرد، هر کی هست تو کارش استاده. بعد صداشو بلند کرد و فریاد زد، آهای، هرکی هستی خودتو نشون بده؟ اگه این کارو نکنی میگردیم و پیدا میکنیم و حسابتو تو می رسیم. با این حرف جان از پشت درخت بیرون اومد. به غول نزدیک شد و تفنگش رو بالا گرفت. اولین غول گفت: اون تفنگو کنار بگذار و پیش ما بشین و غذا بخور. بعد برای ما تعریف کن تو جنگل ما چهکار میکنی؟ جان گفت: "راهمو گم کردم؟ و از شما ممنون میشم اگه منو از اینجا بیرون ببرید غول دوم چشمک شیطنت آمیزی به رفیقش زد و گفت آ خیلی خوب فقط یه شرط داره میبینم که تفنگ با قدرتی داری جان منظور غول فهمید و فوری گفت این به درد شما نمیخوره چون وقتی تیرش خطا نمیره که من شلیک کنم غول سوم گفت اشکالی نداره تو با کمک این تفنگ میتونی مشکل ما رو حل کنی و شاهزاده خانومی رو که زندانیه نجات بدی و پیش ما بیاری ما هم در عوض اونقدر به تو طلا میدیم تا بقیه عمرتو در رفاه آسایش زندگی کنی غول ادامه داد درست بیرون جنگل دریاچی بزرگیه و وسط اون جزیری و توی جزیره قصری تو این قصر شهازادی به دست پدرش زندانی شده پدری که پادشاهی دیوون است. خول دوم گفت هیچ کس نمیتونه به اون قصر نزدیک بشه واسه اینکه سگی وحشی شب و روز پارس کنان از اون مواظبت میکنه. تو باید با اون تفنگ سگو از بین ببری. جان با ناراحتی گفت اما من دوست ندارم سگا رو بکشم. خول اول گفت ناراحت نباش این سگ جادو شده. یقیناً سرنوشت یه شاهزاده خانم از یه سگه تلسپ شده مهمتره. جان که تا حدودی قانه شده بود گفت شاید. غول دوم در حالی که داستان رو ادامه میداد گفت پادشاه اعلام کرده هرکی بتونه دخترش رو از قصر بدزده شاهزاد خانم همسر او خواهد شد. ظاهراً پادشاه از دست دخترش خیلی عصبانیه چون شاهزاده خانم نافرمانی کرده و همسر مردی که پدرش انتخاب کرده نشده جان پرسید شما با او چه کاری می‌خواهید بکنید قول‌ها یک صدا گفتند این دیگه به خودمون مربوطه با آنچنان بود چشم قولو رفتن که جان فوری قبول کرد اون وقت آتیش رو خاموش کردند و خوابیدند روز بعد صبح زود جان و سغول راهی دریاچه شدند وقتی به دریاچه رسیدند سوار قایق قول‌ها شدند و به طرف جزیره رفتند به محض اینکه به نزدیکی قصر رسیدن سگ نگهبان پیدا شد و درست زمانی که دهانش رو برای پارس کردن باز کرد جان با یه گلوله کارشو تموم کرد غول اول گفت آفرین و چنان با شدت به پشت جان زد که نزدیک بود نقش زمین بشه غول ادامه داد حالا میتونیم قایق رو به ساحل ببریم و اونا رو غافل گیر کنیم مرد جوون نفسی کشید و گفت اینقدر عجله نکنید شما سه نفر فعلا تو ساحل بمونید تا من برم سر و گوشی آب بدم ممکن بازم کسی اونجا باشه خولها با بیمیلی قبول کردند جان به تنهایی وارد قصر شد هیچکس تو قصر نبود جان وارد سالن و بزرگی که اسباب و اساسی مجللی داشت شد روی دیوار خنجر ای قشنگی آویزون بود و زیر اون نوشته شده بود هرکی این خنجر رو داشته باشه میتونه تمام مخالفینش رو نابود کنه. جان فورا خنجر رو برداشت و زمانی که داشت اونو به کمرش آویزون میکرد نام پادشاه رو که روی اون حک شده بود دید. بعد سالون رو تر کرد و به اتاق دیگه رفت و در اونجا شاهزاده خانم رو دید. شاهزاد خانم در رخت خواب بزرگی به خواب رفته بود. مرد جوان وقتی اونو دید یک دل نه صد دل آشقش شد. با خودش گفت من رازی نمیشم چنین موجود دوست داشتنی رو به دست این سغول وحشی بسپارم. نه اون اینجا امتره. حتی اگه پدرش دیوونه باشه. اما نتونست اونو تر کنه بدون آنکه یادگاری از او داشته باشه. به همین دلیل خم شد و یکی از دنپایی های کوچیکش رو که ستاره های تلایی داشت و اسم دخترک روش نوشته شده بود، برداشت. بعد از روی صندلی روسری ابریشمی رو برداشت که در یک طرف اسم پاتهشا با طلاق و دوزی شده بود و در طرفی دیگشم اسم شاهزاده بود. روسری و دمپایی رو که تو کلو پشتیش گذاشت شاهزاده خانم همچنان در خواب بود که جان آهسته و سینهخیز از اتاق بیرون رفت و در رو به آرامی پشت سرش بست. با سرعت و بدون معطلی به طرف در قصر و به جایی که ها منتظرش بودن رفت. قولها پرسیدن شاهزاده خانمو دیدی؟ حالا در باز کن. بگذار ما هم داخل شیم. جان گفت نه نه این کار خیلی خطرناکه چون سر و صدا بلند میشه. تازه خیلی هم وقت گیره. من شکافی پیدا کردم که از اون را شما میتونید تک تک داخل بشید. سپس اونا رو به طرف شکافی که کمی بزرگتر از قدیه آدم بود برد و گفت حالا یکی یکی وارد شید. اولین غول زانو زد و سرش رو داخل شکاف کرد. جان فوری با خنجر نقری سرش رو برید. بعد تمام قدرتش رو جمع کرد و جسد و جلوی شکاف کنار کشید و منتظر موند. غول دوم سوم هم به همین ترتیب از بین رفتند. جان وقتی هر سه گولو گشت با عجله سوار قایق شد و از اونجا دور شد. زمانی که پاتشا و درباریان از خابیدار شدن و سرگولها رو دیدن خیلی خوشحال شدن و شادی فراوانی توی قصر به افتاد. وقتی شازاد خانم برای خوردن صبحانه حاضر شد، پادشاه به او گفت تو باید با قهرمانی که غولا رو کشته ازدواج کنی و بعد ادامه داد او فرمانده سپاه من است. همون مرد شجاعی که یه بار از تو خواستگاری کرده ومیگوید غولها را در حالی که میخواستن به زور وارد قصر بشن با خنجر نقرهای کشته رنگ از روی شاهزاده خانم پرید چون فرمانده سپاه همون مردی بود که از اون نفرت داشت این مرد یک چشم نه تنها خیلی زشت بود بلکه خیلی هم پست و بیرحم بود و سه برابر دخترک سن داشت شاهزاده خانم پاهای کوچیکش رو به زمین کوبید و گریه کرد هرگز پدر هرگز با او ازدواج نخواهم کرد اگه صد سال دیگه هم مرا زندانی کنی بازم راضی نخواهم شد. پادشاه از شدت عصبانیت کبود شد و فریاد زد: چطور جرئت میکنی باز هم از حرفهای من سرپیچی کنی؟ شاهزاده خانم با تکوم گفت: اگه می‌خواهید مرا به زور مرد بدهید، باز این کار خواهم کرد. فرمانده سپا که در آنجا بود آهسته در گوش پادشاه گفت: عالی جناب، به نظر من باید او رو مدتی از قصد دور کنید تا سختی بکشه. و سر عقل بیاد او به زودی میفهمه که چه نمتی رو از دست داده پادشاه کمی فکر کرد و گفت بله پیشنهاد خوبیه اونقدر بو سختی میدم تا سر عقل بیاد بعد دستور داد شاهزاده خانم های ظریف و زیباشو در بیاره و لباسای کونی یه دختر دهاتی رو بپوشه وقتی که این دستور اجرا شد سربازای پادشاه دخترک رو به خرابه‌ای در میان جنگل بردن و به او گفتن، تو باید از هر رهگذری که از اینجا میگذره، پذیرایی کنی و اونا رو مثل ارباب خودت بدونی. تا اینکه اطاعت کردن رو از پدرت یاد بگیری. شاهزاده خانم مجبور شد از اون به بعد برای اونایی که به کلبش می‌وبدن مثل یه خدمتکار کار کنه. به زودی این خبر در تمام شهر پیچید و به گوش جان رسید. جان به جنگل رفت. دخترک مشغول جمع کردن هیزون بود. جان نزدیک شد و به او در بردن چوب ها کمک کرد سپس غذا و نوشیدنی خواست و دخترک با فروتنی به او خدمت کرد وقتی که غذاش تموم شد از اینکه پولی دریافت کنه خودداری کرد جان پرسید تو کی هستی به نظرم خیلی آشنایی نمیدونم کجا تو رو دیدم شاهزاده خانم که از مهربانی جان خوشش اومده بود تمام ماجرا رو برای او تعریف کرد جان دیگه طاقت نیورد و فریاد زد ولی اون کسی که گولا رو کشت من بودم البته که واضح بود شاهزاده خانم حرف اونو باور نکرد و خیره خیره به اون نگاه کرد ولی زمانی که دن پای نقره روسری عبرشمی رو, عبر رو نشون داد، حرف اونو باور کرد اون وقت با هم به نزد پادشاه رفتن و تمام ماجره رو براش تعریف کردن پادشاه که ظاهرا اخت کرده بود گفت که اگه میخوای تو رو دوست داشته باشم باید با این شکارچی جوان ازدواج کنیم. دخترک با شرمساری گفت میدونم دونم و ازدواج خواهم کرد. به این ترتیب جان و شاهزاد خانم با هم ازدواج کردند و سالهای خوبی رو کنار هم گذروندن. جان به دنبال پدر مادرش فرستاد و اونا رو هم پیش خودش آورد. به این ترتیب به قول خودش وفا کرد. از اون طرف پادشاه دستور داد فرمانده لافزن و دروغگو رو در امیغترین و تاریکترین سیاه چال بیاندازن و او رو به سزای اعمالش برسونن.